امروز ما به یک چیز بسیار مهم ضرورت داریم که متاسفانه ما و مسلمان ها او را بسیار کم داریم اگر یک مثال بگوییم این ضرورت خوبتر پامینا میشه اگر شما یک کسی رو ببینید که یک درخت شانده یک که خورده شانده و این پرسان که امون نیالیگک چطور شد میگه والا نو نو نشانی کرده نه نو نشانی کرده که علامت عزیز که یعنی در این زمین امی درخت کشانده شده این از زمین متاثر شدن، و آر نشانه های زنده شدن ازی و, و سمر گرفتن ازی و انشالله کلان شدن ازی وجود نه نعلم نشانی گرفتن در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که اصحاب کرام به دین مقادس اسلام مشرف شدن اگر از هر کدام از و در هر کدام از اینا تحقیل می از ایمان در وجود از اینا وجود داشت نشانه های ایمان چه قسم بود؟ که امروز ما متاسفانه یا نداریم یا بسیار کم داریم نشانای ایمانی بود که وقتی یک مسلمان حقیقتاً به قرآن الشان ایمان پیدا میکرد، کرد با ضرورت نمی شد که در قسمت فهم قرآن و یا احکام دین برازو فلسفه گفته شود او دلائل گفته شود بگفتن سمعنا و اطعنا غفرانه که ربنا و ایلی کلمسیدو شنیدید و اطاعت کردید سبحانك که سبحان رب سبحانك ربنا اینج امروز در کشور ما وقتی که نشانه های ایمان میبینیم ما یگروز یک, یک کسی صحبت میکرد یک دکتر سے ما گفتم همه قدری که مردم به تو عقیده دارن و به تو یقین دارن در عصر امروزی به تو دکتر اگر اینمه قدر عقیده به خدای عزواجل می داشتن یا بسیار مؤمن بزرگ می دارن. اگر یک کسی را یک دکتر تب بگوید که روخن نخو چربی نخو برات نقص میکنه، فوراً چربی را ترک میکنه. اگر بوش بگوید شرینی نخو که شکرت زیاد میشه، فوراً اگر بو کشیشا مگوید نه نه نه نه دکتر من کرده گفته که شیرینی نخو. ولی وقتی که برش بوگی که خدای عز و میگه که اینی کار نکن در مقابل از صد دلیل پیدا میکن اینال کجاست علامه ایمان و نشانه ایمان داری انسانه که یه انسان ادعای ایمان میکنه امروز وقتی که ما میبینیم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عبوبت صدیق رضی اللہ تعالی اگر کسی هر کدام از اینا را به فکر بکنیم و در از این که خود مقایسه با امروی از بکنیم ببینیم که ما بسیار ضعیب هستیم و این نشانی ایمان در وجود ما دیدن هم میشه پس ما چطور ادعا میکنیم که ما امت محمد صلی الله علیه وسلم هستیم از خود پرسان کنیم که آیا ما امت محمد صلی الله علیه وسلم هستیم؟ آیا اینکه مثلا یک چند نفر حافظای قرآن ما تربیت کردیم و اینا را دستاربندی کردیم؟ آیا امی اسلام است؟ آیا در این مجلس که هرکس به دادقه و پانزدقه گب بزنن و باز بعد از وقتی که شیردل آمدیم به پردل پس بریم و اشتاسیری در شخصیت ما نباشه؟ ای خوب باز ایمان نشد، ای خوب باز اسلام نشد. حضرت عمر و دلتالانون میگم, میگم دیگر دیگر که میشد من, میشد. من میدیم که حضرت عبو بکر صدیق گم میشه خلیفه مسلمان هم هست وای حضرت عبو بکر صدیق کجا میره میگم روز روز از پیشنی رو تعقیب کردم وقتی که تعقیب کردم رفتم دیدم که یک زن سرسفید نابینا در یک بغل کل در یک هست حضرت عبو بکر صدیق رفت اونجا اتاق هستی رو جارو کرد دیگه شام برش مختا کرد جای شام برش اوار کرد آباز باد از اوزو گرف آمد به نماز شام مگه دیگه روز عزت عبویت صدیق وفات کرد میروز روز وفات عزت عبویت صدیق مگه فکر در فکرم گشت که عموزن بیچارت چطور شده باشم مگه من دویده دویده وقتی کنجا ربتم دیدم که بیچارم چه قرار ششتن زوزو خانهش جارو کردم زیز دیگش و دیگشم نارشه برش کردم و برانگفت که بچه اما نفر که دیروز میامد بسیار با اخلاص وقتکی میامد امروز و نامد ایوازش تا رو بخیرم رایی کردم مگم تو بسیار نا وقت امروز آیا مسلمان داری که بخاطر خدا یک سطل یک مسکین اوشکتش وردادن امروز ما تو مسلمان داریم که از یک فقیر و مسکین و یک زن بیوه و یتیم ازو با خبر باشه امروز ما مسلمان داریم که ختم بکنه خیرات بکنه مصرف بکنه و اون مصرف خود فقرا و مساکین هم جای بتو یا این قسم مسلمان استیم که سوتاشو و گرفتیم و اگر اوتا احمق استاد هستاکین در دروزه که غریبا را نمانی. کسی که اومده که کاسه گه کرده و رنه نمونی ما میگیم ما امت با همه الله علیه و سلام هستیم نشانی ایمان خود را باید ثابت بکنیم که ما چقدر ایمان رو ما چی نشانه داره عزت عمر دلتالانهو در بین قریه میرگ قریه به قریه میگش یک روز میدرگ قریه در جای سهل میکنه که یک نفر در دان خود استاد است و از داخل صدای یک زن می مریض است ایمه برش میگه مگه می بیدر چی گفت چی گفت میگه والا بر برادری کار شما نیست دیگه تو مرد پسیو شده است میگه نه خیره بوگو برام چی پس چی مشکل داری میگم این خانم ما کسب پیشش نیست تفلش وقت تولد تفل از حال کس نیست که بالای سر زمین کلام سیاست بشینه عمل ده داخل بیچاره گیر می کنه و ناله میکنه و بیرون از ساخت خدا بالایش دهند اگر دمی حالت ماطع باشه ماطع میگم اخو مرد هستیم میگم مرا به گپ من را پاک پا زنانه کی حضرت عمر ردلتاله انهو فوران میره پیش بیبی ام کلتون که دختر حضرت علی بود و زن زن حضرت عمر ردلتاله برش میگه برش میگه ای بیبی بی. یک دروازه جنت بروی باز است میخوای که بری چی از دروازه جنت میگه اونج یک زن است دالت بسیار سخت قرار داره. چرا قرار داره؟ این تو مشکل داره خیر اس بیان. از تو کمک بکو که این دروازه جنت و ایراه جنت که برای تو باز است امیر بسس سرف نکنه. بی بی حرکت میکنه. از بچه سرش حضرت عمر دلاتانموی در مواد میگیره گزه که برای اونمو زن که در بو حالت مریض میباشه برش, برش تهیه میکنه و همه بره وقتی اون نفر سهل میکنه که در این شمالک در این خناک در این نصف که کلی که خواستن ایدون نفر از آسمان تاشه خود مردم زمین نیست که در نصف شو خدمت ما قرار بگیره امروز ما دکترای داریم که در پشت خانیش میاد میگه مریض ما در حالت هلاکت است بشوک خدایی میکنه میگه برو بگوش که دکتر در خانه نیست آی دکتر ایمان داره اون جناقر میموره اگر بینی که نابینا و چه هست اگر خاموش بنشینی گناه است. کوکی اصر ایمان به وجود از دکتر که اگر فهمید که عینم ای این مریض در۵ رو دو جور میشه برش پصد روپ یک زار دو هزار پر رو برش و چه کاک های خودن پچکاری بالاا ساختهگو پیچکاری کنه و چ موبای خودم مسئول سیررم ساخته از او طرریخگه برش یک برو بر رو که در شب حال نه بیا بازد ماین ما نهخانه بیا بر از او چه ج میکنه تا دو هزار پ دیره بکنه کجا آزارار ایمان در وجود از این یاد بگیری من از ازرات امر از خانم ازرات عمر علامت ایمانه. وقتی که نامه همه خانم ازرات داخل میشه پیش از سیاستر از اون و خود ازرات امر در بیرون در بیرون چی میکنه در بیرون آتش در میتنه دکتانه جور میکنه و پوف میکنه و این افر که روایت میکنه مگه بد دیدم که از بین ریش حضرت عمر دود بالا میشد دود بالا میشد بخاطر خدمت به مردم امروز ما متر متر ریش میمانیم ولی میریم که امریکایی ما آیده بسته میکنیم دسته امریکایی ها استاد میشیم به زد وطن کار میکنیم و باز میخیزیم میگیم که ما خادمین قرآن هستیم کجاست علامی ایمان در مسلمان قرآن نگه اشداؤ علی الکفار رو حما او بینه هم برای کفر شدید هستند و رحم داره بالای مسلمان ولی ما برعکس از او شدید هستیم بالای مسلمان ها مسلمان خدا میکشیم قتل میکنیم از بین میبریم و با کفر دور کمر دور و بسته میکنیم و دست خدا با کافری یک جای میکنیم و باز میگیم که ما مسلمان هستیم و ما علامت ایمان داریم و ما چقدر قدر خدمت به قرآن میکنیم ترسم نرسی به کعبه ای این راهی که تو میروی به ترکستان است تو انسانی که مخالف قرآن حرکت میکنی دشمنای اسلامت دوست قرار میدی و مسلمان دشمنت قرار میدی ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی ای که تو میروی ای به طرف جنت نیست ای به طرف مکن است این راهی که تو میروی به ترکستان است اعرابی طرف رئیس طرف ترکستان بود کجا میریم میرم طرف خانه خود. خدا میرم حج کردن در درسم نرسی به کعبه اعرابی ای مسلمان که تو در این موقف قرار داری و موقعیت قرار داری هیچگاه نمیتونی که تو به مقام حق و برای راست برسی وقتی که حضرت عمر دیگه پخته میکنه خانمش میبرای برش میگه یا امیر المؤمنین ای رهبر مسلمان ها ای رهبری که چندین کشور تحت تاثیر تس و آل و خاطر یک سی مسلمان خدمت میکنی برای دوست بشارت بتوید که خداوند برش فرزند این نفر ایران میماند همین مؤمنی با خانمش میده خانم خدمت میکنه و برای ما و برای مریضم خدمت میکنه. ای ای, ای, ای, ای, ای, ای ای ایران میمانو او برش میگه کرد. برادر عزیز وظیفه ما، وظیفه وزیفه که ما مسلمان هستیم باید بر تو خدمت بکنم و امروز کسای ما داریم که به نام خدمت به نام ما و تو وطن و لیلام میکنه برای مردم دیگه میتونیم آیا ای میتونه که بازدزیر بیرقی محمد رسول الله در روز قیامت با حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اصطاعت شد چرا خدا فریب میتونیم چرا خدا بازی میته؟ چرا خود, چرا خود فقط ف... تنها در اینمی مجلس محفل و دایگر که وظیفه ما ختم شده؟ وقتی که در قلب انسان ایمان جای نداشت وقتی که ایمان محبت با کلمه گویی و با کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگن در از اون غمگین نشده تو مسلمان نیستی بنی آدم اعضای یک دیگرن چو در آفرینش یک جوهرن از یک جوهر اگر یک عضو بدن از اینا و درد برین دیگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی سعدی رحمتالالعی میگه نام از زو انسان که در درد مسلمان غمگین نشه نامش آدمی هم میتونیم ما ما تو نامش مسلمان میمانیم چرا خدا فریب میده چرا خدا فریب میده اینا هر کدومی از اینا را حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شاو به شاو میرفت رفت حضرت ابن عباس رضی الله تعالی ای روایت میکنن عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی رو روایت میکنن نگاه که یک روز من در قریه کی میرفتم طرف قریه دیدم که در پانی می یک مرد دیگه هم هست را که من بگم میره تفسیر طبری روایت‌ها زیاد آمده میگه که میرفتم رفتم که یک کس نگام طرف قریه میرم میگم من گفتم باش ما ببینم که اگر کس باشه بشویم بیا قصه کرا قصه کرا بریم که اگر در یک جای دواز راه سر ما آسان شود میگه رفتم که سلم میکنم ازت اومد ازت تو کجا میری میگه ما عادت دارم که شو با شو قریه با قریه میگردم تا از حال رایتم با خبر دیدیم کل منطقه هم خوستند کل منطقه خوستند و یک منطقی است که یک جه که یک خیمه است کم کم دو معلوم بشه بیدیم که یک زن ششته دیگه مانده سرشان پود کرده آتش در داده و طفلکهاش بشه میگه مادر جان گشت نشده مادر جان گشت شده. این میگه که داشتیم صبر کنین، صبر کنین، آله پختم میشه، آله پخته میشه، یکش خوابید، دکیش خوابید. آزاد تمر به جگر خون میشه، مه برزی در بازارم میذارم برش میگه، آم چیه را؟ او حالی چی میکنی؟ یچ خشم دیگه است که یه آزاد بجشه و دو آزاد نسبش افتادن، دیگه تو پخته نمیشم، میگه برادر، داده یک چیز نیست، میاد تفلکاره بازی میکنم، یه تفلکاره بازی میکنم، آنو تا وان دوختیم، بیشتر که یا اتفلکار خواب تو نایی که امیر المؤمنین آمر تمام روز بر بیوه ها بر مسکین ها بر یتم ها ماشت این کردن میگه می فهمی چرا نرفتی پیشش میگم من چرا برم او رحبر مسلمان ها خود گرفته او چرا خودش نمیه پیش ما. من من روز قیامت دسته من و یخن عزت عمر و پیش خدای عزوجل از خود و از یتیمای خود بر شکایت میکنم که خدایا عمر امیر المؤمنین بود طفلای من شوکش نبود عزت عمر گریه هایش سر میکنن چیخ می حرکت میکنه. دویده دویده می آید به طرف شرم غذا را میگیره عزتی الله ابن مسعود میگه مرش گفتم که یا امیر المؤمنین یا آمر به که ای چیزا کنم ای برنج و ای به چیزایی را که گرفتی میگه او برمه که آیا تو گناه های در روز قیامت پشت کردم ای بان که من امروزی بورجی را پشت کنم که در روز قیامت در مقابل خدای عزا وجل در مقابلی زن بیوه امروز مسلمان های ما برای یتیما چی برنامه دارن؟ اینمی یتیما را پدرهایشان قابل روس استاد کردیم و کشیمشان امروز یتیمایشان در روی میدان مانده و همه ما کفار ما آیده بستا می کنیم امروز یتیما ما خود چی خواهد کردیم؟ جواب یتیما را در روز قیامت چی خواهد دادیم؟ که پدر تو خاطر آزادی وطن شهید شد ولی امروز ما سر خون شهیدات جارت بیکنیم. بازمان میگم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم اونایی که ایمان داشتن ما اگه نماز می خونیم از خاطر ترس دوزخ نماز می اگر اگه ترس دوزخ نباشه نماز هم نمی در حالی که مسلمان های حدیتی تو نیستن آن کس که را شناخت جان را چی کند فرزند و عیال و خانمان را چی کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چی کند میگه خدایا تو که یک مسلمان در عشق خود در محبت خود غرق میکنی باز دنیا و آخرت برازو میبخشی دیوانه تو هر دو جهان را چی کند این خاطر مسلمان به اساس محبت با خود دووند خدای عزوجل عبادت میکنن. اما ما امروز اگر ترس دوزخ نباشه حد دادپانی خدا هم نمیری ازات مر میره دیگه بار بر برضی میگه که مادر جان بلیاز خدا بگی نمی چیز پخته کو برطفلکای دیگه از خدا بلیاذ خدای رو پختکو. کو بیدار میکنه نان میخوره شکمشون نصیر میکنه برش میگه میکن که مادر جان یزان میگه که بچم بچه‌م خدا خلافت از حضرت رو بر تو برات ما در روز قیامت که عمر در مقابلش استاد میشم و در مقابل خدای عزوجل کهش داووا میکنم حضرت عمر میگم مادر جان به خاطر من به خاطر من طباب بیا دم دم دارالخلاवत که برابری یتیمکایت یک چیزه تا اینکه که, که صوبکی زن میره که سوال میکنه پرسان میکنه کجاست امیرالمومنین میره که خود اینم انسانه که شو پیش از آمده بود این خودش امیرالمومنین است تکان میخوره حضرت عمر برش میگه که نه خود جان تو حق گفتی تو راست گفتی مرهبر هستم مسئول هستم در روز قیامت خدا از من پرسان میکنه از این خاطر گپایی که تو گفتی قصد. امروز های ما کسایی که ادعای رهبریت میکنن برش گفتم میتانیم که تو سالم هستی برش گفتم میتانیم که تو خون یا شیعیده رو پروغدی برش گفتم میتانیم که خاطر یتیما خود در قصد ها زندگی میکنی و یتیمای شهیده در هر جای و در هر طرف افتادن و دشمنای اسلام میره اینا رو شکار میکنن و یهودی و مسیحی و نصرانی اینا رو میسازن های گفتم میتانیم اگر نا. اگر علامت ایمان باشد بله ولی اگر علامت ایمان نباشد نه کجاست ایمان که مادر قلب مسلمان اوره احساس بکنیم امراض وقتی که برای پدر میگم که پدر تو مسلمان هستی خون شهیدا به خون شهیده ای وطن از شما از روس آزاد کردین بلیاز خدا اینجا مسلمان ها در خون غرق هست مسلمان ها در فلسطین در خون غرق هستن در عراق مسلمان ها و سر سیاسه های مردم تجاوز میشن خجالت بکش که داروسی تو سازنده و رقا سر بیاری لیکن کجاست پدر مسلمان که راست با بیار راست میگی سازن. نمیارم در جایی که اونجا خون ایدار اخته امروز که مسلمانات و مشکلات است باز هم اینامید پدره که خود آجی میگیره گیرن خش میگیره خدا بزرگ بزرگ قرار گیرنخراشششب و زنایش در بین اوتل ها کواهشلو یخای شیلات و خودش با اینینامی لقببه آجی که در پشت کار داشته شده براصه ها و سازم ده ها ۳ چل زار میتر اما ماوری یک مدرتی دینی کمرش میشکنه که ازار رو بکنند. نشانی ایمان است، نشانی ایمان خوب بود که چل از آرپی خود یاجی سایب به سازنده و رقاسته نمیداد نیمان که مدرسه حفظ قرآن جور شود نیمان که دارالعیتام جور شد و بولادهای مسلمان هستند امروز برادرای مسلمان برادرای مؤمن. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی بالای مسلمان‌ها خوش حالی آمد. وقتی که خوش آمد مسلمان ها کلشان در حالت تکلیب بودن. بیا در ما بیانیه نمیتوخم. بسیاری کساست اینجا میگه فلان جان بیا بیانیه به تی بیانیه به فلانی فلان بیا بیانیه به بیانیه به وقت خراب شدن که بیانیه دادند. ما اینجا گپ از دین بزنیم. گب از قرآن بزنیم گپ از حدیث بزنیم مردم و دردشان و مرضشان بفهمانیم برای اونیش تفیده که در توی دختر خود چارلک و پنیلک تویانم میگیرم برش ببینیم تو دختر فروش هستی پدر دختر فروش هستی در اسلام تویانه نیست برو کسی که بر قاتل سه تا دختر بد میتر و در مجلسش میجنه برش بگویم که تو ضد قرآن حکم میکنی و من لم یحکم بما انزل الله فا که هم الكافرون تو حکم قرآن تی است، هست او رو نقص میکنی و ازش بد رواج جاهلیت تطبیق میکنی تو بفهم که تو مسلمان حقیقی نیستین درد مردم برشان بگویم برو کسایی که ماری میشه که جوانا ازدواج بکنن سرش مسارف زیادم میمانن سرش اوتل و سرش مصرف و سرش چل پینجه سر سیر برنجه کمر داماتم مشکنانه بر از او پدر بگویم که اگر دخترت و یا ای پسر مبتلا به گناه و زنا میشه تو در گناه از زنا شریک هستی به ای خانی خدا از گفت خدا بزن گفت قرآن بزن تا مردم مرض خدا بپامه، دختر فروش بپاهمه من دختر فروش هستم او کسی که برنج سر دختر خود میگیره. برنج از این ناروا و حرام است مثل رشوت خور و غاصب از اون نفر قصد کردم ما را خوردن برنج از این جایز نیست باید ایره بر مردم بمانیم تا که امروز ظالم بوامم از ظالم هستم کار بوامم که من هستم دختر فروش بوامم ما دختر فروش هستم حرام خور بوامم که ما حرام خور هستم او کسی که از تو یانی دختر خود به زیارت الله میینه صد دفعه بگو دفعه از خدا سرش لعنت خدا نظر میشه تو از پیسی حرام به حج میگید از فایسی حرام به حجمی رشوت خور بو ما که لعنت خدا سرش نازل است ولو که پنجا رو رشوت بگیره مامور باشه مدیر باشه رئیس باشه پیغمبر خدا گفته که لعنت خدا سر رشوت خور است باز از فیسی رشوت او باز می رحمت و میگه که ما ولی خدا ثبت کردیم در حج با خدا که خود تکت کوام کنید بایت الله شریف شیطان که رشوت خور که سنگ بزنن شیطان از اون طرف که سنگ می میگه تو شعی تانه بزرگ مرکت سنگ میزنی با پایسه حرام خانه خدا را زیارت میکنی تو عمق تو رشوت خود تو وطن فروش تو دروگوی تو دوست تو کسی که اختتاف میکنی اولادای مردم هم تو که سود میخوری از پایسه این سود باز میعی تو زمین مردم از سرش عمله میکنی سر زمین مردم داوا میکنی زمین های مردم ها میخوری باز از پیسه ازی به هج لعنت خدا سر تو از زمان عزت و مرد دیلال شد قافله از عزت عثمان آمد تجارات دویده, دویده رفتن که خوشتالی است خلا نیست اله که خلا زیاد از قافله رسید برین برش که ما برای دو فیصد چهار فیصد ده فیصد بیس فیصد سی فیصد برت ج... برت گفت نه نه نه نه گفت د گفت نی سه چند خیلی چی میخوایی حضرت عثمان گفت که ده چند ده چند کلگی آمدن پیش حضرت و مرد دوتان گفتن یا همی دومونه حضرت عثمان سکر مردم از گشنگی میماره قافلش بعض دبست روایت همه که هزار شطور بود بار از گندم و از خلاوی گفار گفتی آمدن برمان میگه کسی ده چند حضرت عمر خندق گفت شما حضرت عثمان امامش نمی‌شناسی ظلم نمی‌کنه گفت خیر بس بگش، حضرت عثمان وقتی قامت باشه که پیامبر، مردم چی میگه؟ بله تجارت اومده شده که دو چند مرا فایده تو میگه سه چند میتونه تو میگه پنج چند میتونه گفت خیر چی میخی گفت ما گفتم ده چند گف ذات بر تو داده نمیتونه گف ذات خدای عزوجل ده شان بر ما سواب میدن بنائن ما نمی هزار شطوری خره خدا برای خدای عزوجل میتونه برای فقرا مسک مفت برای مردم توضیح میکنم تا که من اخرت را این بود علامت ایمان این بود علامت ایمان ولی ایمان اگر یک نفر بیچاره مرده داشته باشه مورده داشته باشن پیغمبر خدا با میگه که کس که اگه دخانه کس فوت کرد شما بر از او غذا پخته بکنید عمللهال جفرن اسنا اوال جافرطعان حظت جفره در طالوم و, و, و فاد کرد بر مردم که شما اقضا بر از آل جعفر جفرطیار کنیم که آل جعفر اقضا رو بخوره کونام به چهاررق هم دیده هستند امروز معیوت که برای قدیدده ها غزار تهیه کنیم دو سه صد نفر میرن در سر خانهاز زو و نان چهار خودم نان ش خواب سر از او چپ میکنیم باز روز دو روز سه شب و از برام خدا هاچه قدر حال اماماده ای مجلس هستند در کدام کتاب در قرآن دست سنن در حدیث در روز دو در کجاست روز سه در کجاست شب جمهگی در کجاست چلپوری و گیری. کلش عادت که از نسرانی ها و اون دعا انتقال دادیم و سر مرددار بیچاره، به زور غذا نفر هم می برادرای ادعاقل عزیز آخرین سخنی را که من می خواهیم خدمت تان بگویم اوی است که خداوند مطال جل جلوه جل در قرآن عظیمشان چی میگه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو در قرآن شفاء ورحمة نازل کرده در قرآن شفاء حسن. در قرآن نظام است، در قرآن نظام اقتصادی است، در قرآن نظام اجتماعی است، در قرآن نظام سیاسی است، در قرآن نظام فردی و اجتماعی تمام نظام ها در قرآن ازیم شان است. اگر ما حقیقتاً قرآن بخوانیم و به قرآن عمل بکنیم. ولی متوجه باشین که آیات دامی استاد نشین. بسیاری کس از امر خرمه ای کنی. ولی بعد آیات میگه کوالای یزید و ظالمینه، ایلا خسارت. اینمی قرآن بر ظالم خساره میکنه. بر ظالم کمرش قرآن میشکنند. بر او کسی که به ایمان به قرآن عمل نمیکنه، چشم درد باشه قرآن بخوادی کور میشه. از این خاطر ما بیاین که با خدای از وجل عهد بکنیم که خدایم ما امروز محفل قرآن آبدیم اگر جوان هستیم با خدا عهد بکنیم که دیگه آروزی خدا مطابق کتاب خدا و مطابق سنت پیغمبر عمل میکنیم آیا این تعهد جوان ما میکنن؟ بلند بگویم میکنه؟ گردن تان بسته که میکنه؟ رشته پیدای ما تعهد بکنن که ما بادازی به خاطر رضای خدا از و رقص و دول و محفلهای فساد دوری میکنیم و به خاطر خداوند محافل خدا محافل قرآنی میسازیم ليش سفیدای ما این تعهدام میکنن اگر ما اینی قسم به قرآن عمل بکنه، اون وقت با امت اصلی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم و اونو وقت است که قرآن عظیم شان در وجود ما تاثیر میکنه و به خدای عزوجل دست دعا بالا میکنیم که پروردگارا بر ما توفیق نصیب بگو که ما مطابق قرآن عمل بکنیم خدایا هر کسی که به ضد قرآن حرکت میکنه و به ضد نظام قرآن حرکت میکنه و به ضد لا اله الا الله حرکت میکنه در هر جای هر که باشه خدای تبایش بکنی خدای اونمو قسم که روسا را شکست دادی و غلامای روسا شکست دادی خدای امریکا و غلامای امریکا را هم هم تزلیل بساز و شکست دادی وروردگارا آخرین جمله که از زبان ما خارج میشه و آخرین جمله که کلمه که بالاخره بعد از اون مادگست خند گفته نمیتانیم و به دنیا دیگه میریم خدای ای آخرین کلمه کلمه لا اله اللہ اللہ و محمد رسول الله الله